بابا من بعد از گله صبح به بوخ کار این خونه رو خریدم زدم به نام دو که مثلا من های زندگی من شد خیلی خیلی سرم محکم شد اصلا تو میفهمی من کیم اصلا فهم می‌نی من کیم تو در حد من نیستی آفا بابا حالا من هم دادم پیرو اون میدم الو عزیزم خونه نیستی رولا جو ای کاروشی هم میکنی مزی از سرت عزیزم رولا می ما افتر دستوی او جواه رویل کنی سکرولا مد یا افتر لویبانم تون خدا بل راحت سر بلیم زنی جون خود تا اروا خاکه از دست ادستای دیوان بازیاد به خدا اردیان یه میشناسی که میگی خیل خو ما با نمیده اون کنی الو الو داد این خیلی بده که تلفن خونه را جواب نمیگه خوشدم خاموش کردی پاشو کشی و بردار خجالت بکش مثلا ادعای حرفی بویانت هم میشه اینجا چهل نفر علاف توان منتظرن جنابالی تشریف بیاری آبیشت ساعت هشت صبح بوده آقا مرداد الان یازدهه تایی کننده و کارگران توی جای تنبالت میکنن آقا مرداد بله دارم میام میگم آقا دارم میام دیگه سخنرانی نکشین اینم صدا تو خیلی خوب بابا اینم سره رفتم اومدم چی شد آقا میدونی چی میگه میگه این کارا حرفه نیست میگه همین راهو دو سال دیگه برید پید میشین آقا جان برش تو خیالت راحت باش من فردا 5:30 صبح اینجام آن تایم من چون خونه ندارم توش رکامت میگه من حت شوخی گرفته آقا چه شوخی خونه به نام زنه گشته برای فروش من خونه ای ندارم که توش بمونم که داداش بگم من میام همینجا میمونم یه اتاق به من بدن. از قراردادم کم کنن سینا امروز خاموش کن سری بریم به کارمون. من جدی گفتم ها. منو بگو ما من فردا انقدر چهارمین سوار نمیگیری من. بفهمید چیه. آخر بده شما این همه ما کار کردیم من چای خورم؟ تو کافه ببر بده بیا. بفهمید. همه دیگر گول ناز آسف حالش بله میری این کتاب دابط جنگ رو میمه داره برم اون میام دارم فیلم نه اینه این تکرارش هم اینی نمیشه یه حب نیسته من یکی مخابی آخونه دای رحمانه دای رحمان که خودم آنه مرتب کردن نمیخواه اومدیم و یه قریبه با دای رحمانه دیب خیلی هم درش بخواه اینا که هست یا بلند میشه که رختی جمعو جور میکنی یا منشی درست همه عشق تا منویسی ارنم می بری شما اید فشار قرار بده ولی خب اینجوری هم که خونی نی بالاخره باید معلوم شم ما خو کنیم بفرمایید این خانदादा شما نخواب و خوراک افتاده الان بیشتر از شش ماه که ما داریم میریم و میایم الان مشکل شیه مشکلی که نیست می با تک تک اهالی فامیل حرف سرم. با همه اعضای خانواده هم صحبت کردم بالاخره باید یه جوری قانعشون کنین که قبول کنن بعضی وقت این قاماوون می دسته پا گیر و غلط که با اسم شادیم مشکل پیدا میکنن. فرشم تو الان مشکل شیه مطل شیه سی به یکی شماعا زیست به بیا برید سر خون از زنده تون دیگه راستش به مشکلی نرم تو شناختی هم که مینه این مدت از شما پیدا کردم با این قضیه کنار رو بدم. چند سالی هم که به ازدواج ن کرده هم به خاطر شرایط زنده ای میده هم به خاطر رفهای مردم ولی الان یه مشکل دیگه پیش اومده که اصلا بهش فکر نمیکرده. کرده که مثل دختر خودمه رو چشام جا داره بفرمی اینم آقا حبیب بره گلناز جان خریده همه بچه ها فامیل عاشق حبیب نه که بخوا بازارگر میشه کنه ما نه خدایش خیلی بچه دوسته با جزتون من میروم خبر کنه گلاز بیا, بیا. سرمو گلناز خانه ما الله بیا اینجا به نه ماشالله الله هزار ما شاء الله هم خودش قشنگه هم اسمش قشنگه ما الله ای عروسک از کجا قشنگه حبی بغا و خریدم تو درد بکنه خلاص من من راست میگه خوب بچم بلی بره سراغ درس و مشقش بفرموش جایتون رو بفرموش سر داشه شیرینه بفرموش ناگهون <تصفيق> بد بعد دیدی رولا جون؟ آره، خب بابام دیده. به جونم. همه کسب. ویری ناشته تو بخور مدرسه. منم برم سر کار دیرم شده. ویری رولا جون. می بابایی با این خانمه خواب به چه تو تا حالا بابا تا دیدیم؟ خیلی وقت بگم نیده بدمش اما تازه یا پیداش کرده راز میگی؟ کجا نه؟ کیه؟ چجوری پیداش کردی؟ یه راز مهمه که وقتیش میگه اینو بیم خوشکله؟ آره خیلی قشنگه بر خودست واسه چی؟ آره، میخوام بعدش به تو. دستت نکنه، نمکنه، ولی چرا خودت ارزش به این قشنگی یه آما، چیز مهمی نی برات خودت. یعنی امروز بابای ریحانه به زادگاهش میام همانطور که میینید ایشان قهرمان کشتی آسیا شدن ای باعث افتخاره که بابای ریحانه از این روستا قهرمان شده حالا ازتون از مخام که همتون به همراه خانوادهاتون تو مراسم استقبالش شرکت کنی. چند وقتی هم میخوام یه چیوید بگم ایرم تا حالا چیوید نگفتم بچه بیدی ولی الان دیگه برای خودت خانه میشدی او وقتا که تو خیلی بچه بیدی بابات مجبور بود برای کارش هی با قطاری شهر و شهر بره هر وقتم که از سفر میمد یه چه قشنگی برد می آورد. آقا باباتون خیلی دوست داشت یه شده چله زمسو روز روشنمونو کرد تار قطارش هر ریل درومد و جونشو گرفت نه خیره تو درو میگی بابیم زنده است همه مردم نشنسنش حتی بیشتر از بابای ریحانه روله جو. بابا رفته پیش خدا مامان جان خودم گفتی میدیه بزرگ شدم همه این مخته وقت اینه که شما میخوای با هر باقا عروسی کنی. به نام خدا سلام خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه ما خیلی خوشحالیم آره که خوش آره در خدمت شما هستیم امروز یک مهمان خیلی خیلی خوب داریم یک مهمان که چندین بار ازشون دعوت کردیم که بیام تو برنامه هم نمی اومدن دیگه من خودم چند بار بهشون زنگ زدم برای اینکه شما خواسته بودید اما بالاخره امروز تشریف آوردن و مهمون برنامه هستن این شما و این هم جناب آقای مهداد ساره خیلی شما خوش اومدید چه خبر سلام چه عجب <تصفح> سلام بفرمایید سلام به بیننده های عزیز مردم بزرگوار. من همین شروعی توضیح بدم که فرمودن که دعوت میکردن و من نمی اومدم من مخلص همه شما هستم خب مشغله زیاده من همزمان مشغول کار تو یک سریالم و سکنس های پایانی همین سریالی که داره پخش میشه که شما هم لست داشتین و دیدین به رو ضبط میکنیم درگیر دوتا دو کار که باشیستم وقتی هم میاری بچه ملائیری و اهل ملائیری هستید دلم میخواد کمی ابتدایی برنامه هنوز صحبت اون گل نمداخته یه سلام علیکی که ابو گفت یه سلامتی با همشریعی خودت با گویش ملائیری داشته باش بله چاش سلام عرض میکنم به همشریعی ملائیری گلم مخصوصا بچه خیابون پارک و فخریت که خاطرات زیادی باشون دارم احمی جه. همه همشون میگم دوستتون دارم و همتون مین قلب میم عزیز دله می اینا من یاد بیارم ما صحبت اینو بیانهای عزیز مخصوصا همشریه آقا مهداد عزیزمون میتونن که با شما رایی که براتون زیر نویس میشه تماس بگیرن با صحبت بکنن هر سوالی دارید هر نکته ای دارید هر حرفی میخواید بزنید از بپرسید فقط قبل از اینکه برید سراغ تلفن‌ها بریم با هم یک موسیقی محلی ببینیم و بشنویم بعد میگری میدم این برنامه در خدمتون هست سلام با برنامه میمان شد هم از بفرمایید. سلام ما خوام به آقای مهدل سانی صحبت کنم در چه موردی ما خواهی صحبت کنم در مورد شغلش من همشهدی آقای سارمیم باشه باشه گوشی چند رس دستتون بله که همچنان همراه ما هستید در خدمت مهداد سارمی عزیز هستیم خب ماشالا چکار کردی؟ همینجا علاقه منده و طرفدار و خطها رو اشکال کردن ولی یکی از بیننده های پرپاگورس برنامه الان پشت خطه دوست داره که با شما صحبت بکنید میخواد با یکی از این همشریات صحبت بکنی؟ بله مشتاقانه دوست دارم صحبت کنم خیلی هم عالی دختر خانم گلی که الان کچولوی من سلام میگم به شما این شما و این هم مهداد سارمی عزیز هر سوالی که دارید ازشون ایشون بپرسید الو الو سرون پخش میشه بله بفرمایید بفرمایید چه کم دارید سلام آقای سارمی قسمی گُلنازم گُلناز سارمی منو نمیاد؟ سلام عزیزم فامیل شما سارمیه باعث افتخاره گُلناز خانم نه عزیزم من شما رو کجا دیدم من دخترتونم سالا پیش من مامانم ول کسی تو رفتید ما یه تنها گذاشتید جان اه, یه بار دیگه نه, متوجه نشدم من برای خیلی نامه نوشتم ولی جواب هیچ کدومش شنان ندادیم. دخترم آقای سالمی بچه ندارن که من نخوبه بچه کنم <تصفح> خو... نه ولی خیلی دوست داشتم داشته باشم خیلی خوبه بچه داشتن دخترم شما چند سالته؟ شما نمینیت به چند سالمه؟ مثلا بابامی بدون... خب اگه سوال دیگه از مهمون برنامه ندارید باهاتون خداحافظی می‌کنیم ممنون از تماس‌تون الان خاطرم مشغولم اگه می‌خواستم با آقای صحبت بکنم دیگه باید یه جوری ما برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم یکی یک با آقای مهداد سارمی صحبت بکنن و برسیم دیگه چند تا تماس مردمی داشته باشیم خب برحال مشکلات برنامه زنده است و می‌دونن شما شوخ‌تر و دوستان واسه شوخی بکنن بابا باره دیگه از بقل من بشیدم تو حالت اصلا خوب نیست آره عالم خوب نیست داداش، حالم خوب نیست دارم دیوونه میشم چیزی مهمی نیست تو خواهد با عالم آدم شوخی میکنی چیزی نشده که چیزی نشده یه بچه اومده رو آنتن زنده میگه بچه منه همینجوری شهزارت بس لپی نمیمون میچسبونن الان که دیگه نور الان نوره درستش میکنی این مساور رو همیندزیم درست میشه وای پونه رو کنم؟ تا الان گیرش این بود چرا نیستم چرا همش سر کارم چرا بچه دار نمیشیم حالا دیگه با این اتفاق که دیگه هیچ با این شرایط میگم با ما باید قید پوله رو بزنم با این شرایط باید پیدا خیلی چیزا رو بزنم یعنی چی مجبورم اینه که شرایط خیلی بده بعدی یه راه حالی درستی برات پیدا کنیم همین آخه چرا این چرا نمی کاری کنیم دیگه سلام پیداش کنین دختره اوه حالا چه پیداش کنین بابا این همه نتون نامه فرستادم آدرس داره دیگه اصلاً از شماره تلفنش پیداش می‌کنی من همش تقصیر توئه من گفتم بابا این سریاله داره میاد فیلمی داره اکران میشه من نباید برم برنامه زنده هی گفتی نبرو تبلیغ خوب ال بده ببین اینم نتیجهش. حالا که اتفاق قفت دادی من نامه و آدرسش رو پیدا می‌کنم قول میدم بعد در این مسابقه تو این مجله مجله‌ها روزنامه ها انجام میدی میره پیکارش دیگه اصلا نه یه کار تلویزیونی می‌کنیم میاریمش تلویزیون میگیم آقا بگو درو گفتم راستشو بگی آرسن بعدش یه قده هاشیه واسه هنرمن بگو من نیزنم اینا زیر سر کیه کی؟ یکی که میخواد بابه روی من بازی کنه من قشن کارم و کنم بشینم خونه چی مثلا؟ خونه دیگه آی کیو میدونی کل دعوای من با خونه سر چیه؟ سر بچه دار شدن. هی hey میگه بچه دار چیم بچه دار چیم میگم بابا جم من گرفتارم شیش صبح میرم تو بخ سر کار اصلا نه من نه تو ویل کن. اینم نتیجهش دیگه میدونم کار کار خودشه. درست میشه نیا دی. را <سی> شدم. بابا جم می تازه فهمیدم که شما زنده اید خیلی خوشحالم که همچی بابایی داره دوست دارم شما به دوستا بیایید تا به جشن بگیرم به همه مهن به خصوص حبیباقا از این خانون وره ها بگی که چندین دوست دارید دلم ما خواست دوتر تا مامان من شما نبینم بوی گلت محبوسم دخترتون گلناز باید اینو بند صندوق باست مغازه تو پدر ازید دارید نه دوخترشم اما ماله کارشم بلده من دوسته تاییشم چه نه ایسی؟ ماما همیشه حرفان با تا نمیده چرا میگی؟ پسینا بمیم نگی بابا تو چجور پیده کردی الان کجانم اینه ای دیه با هم دوست نیستی بسه میخوای به کسی چی نگی؟ قول قول بابایم معروف و بمرز قد بلندی هم دار و مهربونه همه مردم میشنسنش می نم؟ آره بابا حتما میشن بابام آقا مهرداد، مهداده مرداد سارمی از کجا فهمیدی که او بابات همه نشونه ها رو داره؟ شبیه هم هستیم، فامیلیمون یکی از سارمی این که دلیل نمیشه. الان بابای منم سارمیه، یعنی آقای سارمی اموی منم هست؟ تازه نصفه روستا و بالام سارمیه. بهت گفتم به مطمئنم بابام آقای سارمیه. منم میگم تو حرف علکی میزنی. به مینیم تو چته؟ تو من حسودی میکنی. باید قهرم نقمه تو خیلی بد جنسی بی خودی قهر نکن که چیزی نگفته تو فیم کنیم می دروق میگم نه بابا من از خدا که بابا دوست مهداد ساره میباشه بابا هم قهر نکنیم خواهش میکنه بری تو باشه میگه یه بشه. شما راضی باشی برنامانو میتوری باشیم که تا تاخره هفته یه مراسمی بیم شستش آقا مرد خوی همه بخش مشکل نره حقا همون که که روز اول گفتم قضیه گلناز برم مهمم هلی نه نستم رازش کنه تمتم بره -تم برم سخت میشه فرشته جام او بچیه کار که تمام بشه یه مدتی نق زنه اما خو مجبوره با قضیه کنار بیادیه گلناز همه زنده ایمه ازم جون من دلم دخترم دخترام فشار بله اگه او نخوامه یکار رو نمیکنه. این بچه تنها دل خوشی منه نمیخوام بیشتره از ازیاد باشه ایمانم نمیخوام ای بچه ازیاد باشه آقا حبیب میگه اگه شما راضی باشید سه نفری با هم برید بیرون شاید حبیب بنا دل گلناز جونه به دست بیاره هنی با گلناز حرف میزنم ببینم چطور میشه خدا چه دیدی شاید ایشالا همه چی درست شد و نتیجه این اینم قابل شما شادی بخوشید بیشت شما در رف morally زحمت خواهش لست тр بیشت begunーブ امروز اعظم خانم اومده بیدین حبیب آقا برای لباس خوشگل خریده دستش درد نکنه دعوتمون کرده جمعه با هم بریم ملایه میایی بریم؟ ممون جمعه اخشیده بله نه از حبیباقا خوشم میا نه اعظم خانم ناراحت شدی مامانی. شما مجبوری با حبیباقا ازدواش کنی؟ کار که کاروبارمون خوبه شما هم که خوب پول در میاری منم پیش شما هم که تنها نباشی تازه شم دوهرمان به مو سر میزنه و هوامونو داره هیچ اجباری نیست رو ای ای تو دوست نشته باشی منم قبول نمکنم اما تو به حرف مامانت گوش کو. ای حرف باقای خود کو. ای اگه ازش خوشت نیومد. به خودم همه چه به هم میزنم درست که جونم عزیزه سخته اونه من که میدونم کار کار خود چی داری بر من فیلم بازی میکنی؟ من فیلم بازی میکنم یا تو چی از جونم میخوای؟ کم از دستت نکشیدم دنبلم کن فونه این ماجرا دیگه مسخره بازی نیسا پای کار من پای آبروی من مسطه تو از آبرو حرف میزنی همینجوریه هم موزواحوال نقل محفله همه فامیله من اشتباه کردم نباید زنت میشدم تو خیلی عوض شدی مردی که رو زنش دست بلند کنه که بابا شلوغش نک پونه کی مردی که بخواد دست رو زنش بلند کنه که بخواد ما من کی دست رو تو بلند کردم مثلا ساا جرت میکنم جیغ میزنی داد میزنی من عصابی میکنی روانی میکنی من فقط جلو تو گرفتم نزاشتم بری همین و تو تو رعایت نمیکنی نمیدونی با چی طرفی نمیدونی داری با من حرف میزنی نمیدونی نگاه مردم به من نمیدونی منو میشناسین اصلا نمیدونی من کیم. شما معروفی مشهوری آشو ول کو برو ای خودت نگفتی من در حدت نیستم حالا میفهمم چرا با بچه دار شدنمون مخالف بودی خودت بچه داشتی خیلی پستی مردا پول الو پول سلام برا میخوری؟ بعدم نمیاد این چیه؟ نماهی دختره هست هر روزم برات می نوشته لطیفی پدر ویقا ندارید بپرسید. اجازه شما چند سالتون هست؟ سی و یک سال من پسرم سوال بهتری هم میتونید بپرسید. اجازه شما روزی چند ساعت هم روین روزی هفت ساعت بچه ها بره قهرمان شدن برای موفق شدن همه تو نیاز به کار و تلاش و پشت کار دارید حالا تو هر زمینه ای که بخوانید آقای لطیفی شما مهتد سارمی رو بله میشناسم. میدونید بابای منه؟ شنیده بیدم که بچه این منطقه ولی بله او پدر منه او یکی از بهترین بازگرهای کشور است و روز به روز هم دارم معروف تر میشه خب بچه ها از این بیشتر مزاحم آقای لطیفی نمیشیم همه تو بیاییم یک اکس یادگاری با هم بناتیم خاله راستی راستی بگه من باورشام. مهداد یه چیزی راست راستشو میگی؟ راستش چی بگم؟ با چی میخندی؟ شما چطوری اینجوری میکنین بابا تو هم شک کردی؟ نه بابا میگن این مجلات زردی جوری مینویسن خب آدم باورش میشه دیگه تو تیتر امروز نوه کن لایه پنهان زندگی مهداد سارمی بفرمو. خب بنویسه این ممکنه چرندی بنویسی تو باورش کنی؟ بابا تو که رفیق هم اینی دیگه با به حال قریبه باش. نمیشه اینجوری باید تطریق قضیه هم درم باید است این دختره رو بده باید باشم درم اونجا این اینه خیلی به باباش می آره اصلا ازش خوشم نمی نم ها بیو اصلا با شرف باشه سلیسا. باری. بری بولا سلام میشم بابا چکاره؟ وای آلپیشا، اصلا من از گفتم عمو تام. تو چه؟ خیلی دروگوی گلم. ها شیشه چه چه در در نمیه بابایی می بابا تو مشهور طرف. بابای من مشهور خیلی دروغگوی. خودت دروغی. ول جانم من برم تو بری یه هم ممکنه درس سر درست شه ها نه نمیخواد خودم میرم هیچ درساری هم درست نمیشه منم همین مشکل هم حل میکنم هر میسر تونن میبینم ببینم چه مرگشه شه خود دونی ولی ممکنه اومادگیشو نداشته باشه آمادگی آمادگی چی کش که چی بابا مثل که حالیت نیستا شمشیر رو ببسه اتفاقام اومد دارم تعقیقشو مشخص کنم یا طلاق یا مثل بچه آدم باشه تا سال زندگیش بابا برای من پیغام داده بیا بیرون میخوام خونهمو بفروشم درحال سعی کن درستش کنه ولی اگه اگه چیه چیه این میگف چیه اگه اگه رو انداختی چته چرا قاطی عصبانی میشی آره آقا من عصبانی هم. من داغونم من له هم میگم وا چی اگه اگه گفتی چی بود چی گفتی هیچی بابا حالا که میخوای بری چی میدونم خبر مرگم امشب میرم فردا میرم چی میدونم میرم دیگه طبقه هم بعدم نشد چطور؟ حداقل باعث شد من دوره بریام خوبش نزم این همون مستقیب این همون مستقیب این همون مستقیب برم این نامه نایمده یامون نکنه بل بلد اومده نه از داده ایدن هزم برایت حالا قدره از کجا برایت آدم ها صدا چقدر تول میکشت تا یه نامه از صدا سیما بیا؟ چی برگم با دو سه روز و از تجادن گلناز با دخترها یه طرف اینا همه به کنار امروز با یکی از دخترها گنابیزم شده. جلاویست شده آره امروز انگه اول با ریحانه هم دعوا کرده هم کچک ای زده چی باگه ای بچه از هزی کارا نمیکر اگه اخلاقو نرد گلناز مدعیه یکی از بازیگرای معروف تلویزیون پدرشه به خاطر هموی تمام نظم مدرسه به هم بخته آقای ابراهیمی ای بچه وقتی خیلی کوچیک بود باباش به رحمت خدا رفت خدا رحمتش کنه راستش مفکر میکردم ای به گولناز نگم بابا نره ورش بهتره چند سال که گذشت جریانه ورش تعریف کردم اما اصلا نمیخواب آور کنم که بابا نره همیشه خدا ورم اگه بابای خیالی حرف مزد ولی من فکر نمیکردم ای قضیه ای جدی باشه راستش منم در دل... این فکر خیالای گولناز کم مقصر نیسته ما همیشه یه بابا خیاله برشت تعریف میکردن بلا نمیشی باید بگم. ولی یه قضیه بالاخره باید تمومش کنید چون عوارز رفتاریه کار زیاده به بلد نیستم. فردا به دایره رحمت میگم بیا درستش کنه. تو دایره به بگو بیا که یه مشکل می‌کشه. قصه نخور رولجو. که پیدا میکنیم بیا درستش کنه. خب اینم همه, ای. همه ای کانالا میزان را داره درست در تو درد شما نمی ناخیم زحمت کاری نکردم مینستم که گولناس خانم تلویزیون دوست داره گفتم زود بیام براش راش بنده گولناس خانم بیا حبیب باقا برای تلویزیون درست که تو میخوای از اشوتاشو بکنی؟ دستتون درد نکنه. شرط داره خانوم خانوم. شرط که بامه روز جمعه بیای تا ببرم بگردم. قبوله؟ بابا که قبوله؟ بهتر. بهم گفتم که دلشو به دست میاره خنیده ستون درده کاری نکردیم مرحمت شما زیاد بای خدا خدافرشون خدافرشون خدا است شما دارن کلامو نوش جان. خوشم میگذره با خانوم، خانوما. بله. منم دفعه دیگه که میخویم بیایم گردش، حنی برام شرط، میخوی بلی؟ نه، نه. چه یادیام. حالا که جور شد، شبم میخوام ببرم بيت پیتزا بخوری. بخشم پیتزا؟ قبوله. قبوله. دست شما درد کنم افتاین ده زحمت حوی باقا خیلی به من خوش گذارم خواهش میکنم کاری نکردم تشکر کردی گرلات کنم خیلی نمی خواهش میکنم خانم کنم و با اجازتون میبرم دست صورت امی بشتیرم می. تو میه ماما؟ نه با اجازتون بفرمیم بای شلکی باید خوش گذاشته خوش با الحمدان گرلات گلناز گلناز کجا میری یه دیه میار مخوای برات بخرمه؟ ها, ها, ها چشم بفرما نانیه. بری بولوز جمعه بری بری ما دیگه آرام دوستیم نه؟ معلوم ها که یه را بده باید خانم پانم من نه جهنم گرس گرس این نه؟ ناس؟ آقای مهداد سارمی خب خواهنا خودت گفتی که آقای مرداد سارمیه او که آره ولی این آقا بابای منه بازگره من بابا آقای یه چی یادمه کچک که بیدم داشتم روی ره راه هم راه میرفتم که یوهای قطع رو من به طرفم بعد بابام دستم کشی رو منو نجات داد بابام همین مرداد سارمیه هم. قیافت یادم. هم. بابا سی. باشه. بریم بیا. افسان. کوله خونه. افسان. پس نه مشی سلام سلام قربان تو زنده‌باشون سرآمدی و ما هم داره نایدو نرفتی نا یعنی دسته بچه پهنیشی شده فلشته هرچی پول وش میدم خرج پاکت نامه میکنم مفصده برای هنر پیشه که فکر میکنم بابا شم خب صبر منم اندازه داره دیگه عصبانی شدم زدم پاک نامه شو پاره کردم ای بابا دسی بچه اونم از دیرو قرار کرده تپیدم مینه انباری دره میام نارم نمیخورم گلاس گلاس من سلکو بیا هر چقدر دلت بخوا نامه بنویس فقط بیا غذات بخور گلاس بیا بیروه یه دقیقه کارت داره بیا کارت داره نیای کار به زور میان میان لوس کردی بچه یه سلام خانم، من نرداری سوی میام و وقتی دیر نشتمش نام بنوویم رفتمین اماماری ها داره بره خوش بسته. عزیزم. خب طبیعه ما به خاطر لطف مردم و همین نگاه بچه هاست که انرژی داریم کار میکنیم راستش راست اولش فکر کردم. از همین دست ها و مزاحمتایی که خب بالاخره برای هر آدم معروفی پیش میاد خیلی جدی نگرفتم. بعد نامه ها رو که دیدم دیدم اون همه نامه اولش خوشحالم شدم گفتم خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر من تو یکی از فیلم آخرم انقدر نقش پدر خوب بازی کردم که یه بچه یه جایی مملکت مثلا دوست داشته من باباش باشم خیلیم زخ کردم. ولی وقتی امروز تو اون برنامه زنده یهو دیدم روی آنتن زنده انقدر جدی گفت من پدرشم رهاش کردم و اینو بعدش اصلا عکسول مردم روزنامه ها، یه فضایی برای من ساخته شد زندگیم به خطر افتاده یعنی خانمم باور کرد قذییت حریفهه ای من به خطر افتاده دیگه اصلا ماجرای محبوبیت و شهرت و اینا نیست این همه را اومدم که ازتون میخوام کمکم کنی یعنی با ببینین وئله یه جوری با هم حلش کنیم. حلم میشه انشالله حالا من میرم میبینمش میگم من تو رو دوست دارم همونجود که تو من دوست دارین همه را رو به خاطر تو اومدم این مشکل رو حل میکنم شما هم کمکم کنید گفتم که غذا نمیخوره از رو نکنی. خیلی خوب غذا نخور یه دقیق در واکو من ببین شما کی؟ یعنی میخوای بگی صدای من رو نشناختی بولن از خانم من مهردت سارمیم می خوای منو ببینی یه نفر باکم؟ سلام گل ناز خاله خانم خاله ما سلام وای عکسارو اینا عکسای منه وای عکسارو نگاه گل صبر من خودمی عکسارو ندارم منو کجا بردی؟ عزیزم گرناس خانه بیا بر لباس تو اوست با خود تا پل خاک خود آقای ساره میخسته یه چه زود میگذره بالای 20 سالی که من اینجا رفتم چیکار کنم مجبور شدم میگه اگر نه یه لحظه سکوت و آرامش اینجا این هوا میارزه به تموم تهرون یه بار به پدر و مادرم گفتم جمع کنید بریم تهرون چنان نهی گفتن که حساب کار دستم اومد همینجا جان تو ملایر موندن خیلی هم رازی هم. اتفاقا پدر بزرگ و مادر بزرگ خانم هم هم ملایری بودن خانومم هم همینجا الان اومده به پدر مادرش رو به فکفامیلی سر بزنه شما هم دختر دارید؟ نه عزیزم ما یکی دو سالی ازدواج کردیم ولی خب نخواستیم تا الان قسمت نبوده بفرمایی دان صحبه پولایی که تو این منطقه به عمل میارن یک جای ایران من ندیدم این نصال سال یکی دوبار که قسمت میشه میام اینجا گلی از در میارم فون مادرم پیش دوستای قدیمی نصال علمداری ها سارم چون میدین که اکسرم اینجا فامیلشون سارمیه خیلی ریادم. بکنم گل از بابای تا خدا بیامورز دیده بودم خیلی آدم خوش مشربی بود خدا بیامورز دادش آشارمی بفرمید قضا دهنی افته بفرمید دست شما دهت بکنه برو دختنم دهت بکن ده دست شما دهت نکنه میشو جام خیلی زحمت کشیدین وای جوق محلی نوش جنتون هیچی دیگه لازم نارید نه تشکر دست پنجاتون دردکنه با اجازتون آه قضاتون رو میل کنید خونه ما همین نزدیکیه شوام هم میریم خونه ما فردا صبح تشیپ بونید نه دیگه دایی جان من باید برم تهران گرفتارم کار دارم فقط اومدم اینجا که این سو تفاهم برطرف کنم خیلی عذیت شدم سر این مسئله با اجازتون گلاژون رو ببرم خونه ما ببینه باش صحبت کنه بگه این قضیه که گفته پدرش هستم و نامه داده و اینا شوخی کرده الکیه چی کلاچ قصهش حالا خیلی مفصله باید بعدا باهم هم حرف بزنیم آقای سارمی از راه رسیدن خستن الان بعد استراحت کنن آقا قضا بکشم برای تو دستش اما دب بکنم ای بچه هنوز الانم باور نکرده که شما باباش نیستید تازه اومدن شما الان به اینجا شکشی بیشترم کرده ببین دایی جان این مسئله درد زیادی بر من درست کرده من فقط الان میخوام خانمم رو قانع کنم که همه این ماجره ها دروغ بوده برای این کارم باید گلناز با من بیاد ابجی بیا. یا؟ بیا یه آقا گلناز گلنازو با خودش ببره پیش خانمش چی میگی؟ آخوی بچهنه آمادگی شده خانم محترم به هر حال این مشکلی که به وجود اومده منم به وجودش نیوردم. باید به هم کمک کنیم این مشکل رو رفع کنین. آقا اومدن و گنوا دردی دوانه میکنه. این بچه چه می من اصلا نمیخوام کار خاصی کنه. فقط بیاد پیش خانومم بگه همه ها شوخی بوده، دروغ بوده. آقا بهتر از ذهن بچه یقدر درگیر نکنی اون اندازه خودش اعصابش خراب است. ببین آقا من نمیخوام بی خودی هی کشش بدین. میخوام تو خودمون حلش کنیم تموشو بره. په جوری که این بچه هم آسیب نینه پس من چی؟ من آسیب ببینم مهم نیست؟ من داغون بشم مهم نیست؟ خانم که شما متوجه نیستی؟ بابا این دختر شما زنگ زده به درامه زندگی تلویزیون گفته من باباشم الان حیثیت حرفی من در خطر زنم گشته رفته زندگیم ازم پاشیده شما این براتون مهم نیست؟ نمیام نمیام خانم تو من میونه مدرسه به همه گفتم شما پدرمی شما میای مدرسه می آره آره میام. شما بیا پیش خانم من این حرفایی که گفتم و بزن منم قول میدم میام مدرسه هر چی تو خواستی بگم همه لباسام بپوشه اولس آقا پمنم باهاتون نه خودم تنها میرم و میام تنها که نمیشه رو جا خش کنه مامان جان سیوکس راحت باشه خانم میریم و برمیگردیم این دخترم گلناز باشه بار. پنیر راست این بفوشه. دختر دختره باوشیه ماشاءالله خدا بهش کنه. نگران نباشین خانم، زود میریم و بر میگردیم آدرس خونه خانم تو باشم هم تو علایر با تلفن تلفنمون بهتون میگم. اگه نگران شدی زنگ بزنین. بریم این مشکل رو حل کنیم. برگشتیم منم میرم مدرسهشون هر چی خواست میگم که دل اینم هم به دست آورده باشه. باش. حجان شما، جان دختر. نه خانم خیالتون راحت باشه واسه هست هست. Thank <laughs> you. تو سر من آره شو شده شما نمی سیگار میکشید؟ بله بهنود خب کجا؟ ملایی هم دیگه قرار بود؟ بیام ملایی ما تو اونجا چی کامی کنی؟ بهنود من کلی هزینه میکنم تو رو گشتم مدیر برنامه هم که همه کارا رو درست کنی دیگه به من چه؟ به قرار نشد به ریزه بگید دو سه روز آف کنه. خب آف نکنه. سچاپ سخواستم می دینا منو بگیرید تا بیام دیگه. حالا حرفم باید برس به گوشی تهیه کننده، بعد تو اونجا چیکار میکنی؟ آقا بابت آب خوردن هم داری به من زنگ میزنی؟ می اصلا اصابه و سلام خراب شد آقا گرفتار شدم دو روز نمیتونم بیام. من، من نمی دونم آقا شما، آقا شما سهمت دیده دولار توش میکنی به دو دلی دیوانم میکنی یا نمیام آقا، اصلا در من موردم، نمیام. آم بلم کن ما خوام برم دستشوی دستشویه کجا بیارم آلا ما خوام برم دستشوی ده, ده صبر کن دیگه، اعتاقت بیار، چه میدونم دستشویی کجاست بایستا برسیم یه جایی دیگه سندگو روز وقت میکن. طرف نهست که فیلم رو نمیده دو روز بخواد آف کنه سرباز رایان میخواد میسازه یه ما اینجا سری برد بیا؟ یه سیگار بدمی؟ یه ذره برای آب بدنی هم بده. بله. بله. خب به من چه؟ چه پرت برای چی میگی؟ ببین تو دوباره دیگه حرفا میزنی؟ آقا به من چه مربوطه که ایشون شب میخوابه صبح بلند میشه نظرش عوض میشه؟ به من چه ربطی داره؟ نیستم آقا. آقا تو مدیر برنامهای من یه طرف اونی. بهن رو دیوونم نکنه آقا نیستم به من چه مربوطی که اون اونجاست من اصلا صحبتی بایشون ندارم من کاری به اون ندارم آقا آقا من یه قرار دادی بستم تب که قرار دادم کار میکنم کاری ندارم آقا کاری ندارم آقا. گوشیه ندارم بهش به من چه اصلا بده گوشیه بده گوشیه. ببین آی محترم آقا ببیند بلند هم فضا ببخشم سرده ای من سر روبره شما هست بولند... نه احترام خودتون نه نگرداری من یه قراردادی با شما بستم سر قراردادم بایش روبره کردم هر آدمیم تو زندگیشی مشکلی برش پیش مورد دو روز نتونستم بیام آقا شما اگه بچت مریش چه بسو میگی؟ بیده... آقا شما بفهم رویش شکایت کنی من دیگه نیستم صدا <تصفيق> <تصفيق> تلفن داری صداش بله صداش کلنا زنگ زدم چی گفت این سارمی 88 سره به رفتم ای آدم بی عقل الان کجانا نمیدونم کو با یه دکه زنگ میزنم خوبه رو به تکدارا زنگ بزن میاش چرا تا بعد دیوونه ش به خود رو گلند. گفتم همونجا بایست هست و بریم سراغش خب برای آماده شو آدرس دک ایم بیم تا می زنگ بزن به حبیب حبیب مرایه او برای ایمان بریم برسم بشون. یا روله بیا سوار شده بریم حتما نواسش میدیده میریم دنبالش آخه داییت زنی زده گفته که ببرمت خونه خواهش میکنم میشه بریم دنبالش خوش تو بخوای باشه پتون بریم او خیلی تون میره باشه چش بیا بالا راتی خانم خانما نه یه خورده یه تسته بیدم نمینم چه نمی یادش رفت خب ایشونم خیلی گرفتاری داره ولی نباید منو یادش مرفت خیلی یواش میریم منمه نیکن این ترافیک هست سنگینه شلوغه. حالا داشت برده با شما نم سیگار میکشید <استر> نه دختره تو واکم اون شکلاته مال شما بردار بخور میشه جان نه نباش الان به شما مرسید قطعاً با بابا بابا یعنی همه آقا میاد زندگی کنم اون وقت شما هم مهینیت با مامانم ازدواج کنی او خونه که بدون خانم خانما صفایی نره بهتون تو سر میذارم ولی مهدی دیگه ما راحت با شما بابا واسه واسه تو کجا رفتین؟ منو یاد اسرا. ریسه باشو. ریسه باشو بدو. علی واقا من دیگه نمیتونه حرف بزنم. من نمیتونم بخاطر دیگه صحبت کنم. مثلا تهران نیستم. نه نه نه نه خدافظ. خدا. ببخشید. فایش منو دست از دایشه فایش مراقبش باشید تو رو خدا. ما درگیر این, درگی این تلفن شو. من ذره احسانی هم ندارم تو رو. ممنون. قربان ای بابا تکنم تا سفز شه عجب آزمیه الو سلام رامان جون خوبی؟ آره قربانه داره آره پیداش کرده خودش رسار که دفعه مشلقه سارمی منم بردمش آره رسمانده مش آره سگو نه نگران نباش من حواسم بشهست گنبالشون آره تو فقط یه لطفی که او آدرس چی برمه بفرست شکلات مخوری؟ چی؟ شکلات اصطرد نکنه شما چند سن بتونن؟ من چه سال اصلا بتون نمیام آره رو میگم ماشینه های باقا ای باقا کیه؟ همین آقایی که منو اوار پیشتون دوست سدائی ها تقیممون میکرد؟ نه اون نیست کسی پشت اون نیست عوض تون میریم خیلی تو میریم من که عجله دارم کار دارم زندگی دارم فیلم برداری دارم میفهمی بچه؟ ببین چه بساطی رو انداختی بچه؟ کلی آدمو بشی سر کار ببین اونجا که رسیدیم هر فلکی نزنی یا. بدبخ ببین ما اسم اسمم گلناز هست گلنز خانم همون حرفایی که گفتم و میزنی نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر میگی من مرداد سارمی دوست داشتم فکر میکردم اگه بابام باشه خیلی خوش بختم بابای من نیست بابای خیالیمه یعنی تو خیالم ساختم که بابام مرداد سارمی خوب گوش رو آکنا همه اینا رو بگو خانممو که رازی کردیم منم میام مدرسه تا اون هرچی دلت خواهی بچه ها میگن باشه پس میگی همه حرفام هم علکی بوده اصلا منم نمیشنسی حتی چیم گفتی دروغه دروغه همه دوستا شما رو میشناسن. من میگم شما رو نمیشناسن. آره میشناسن، ولی هیچ کدوم نمیگن من باباشونم میشناسن چون تو تلویزیون منو دیدن شما بگو من همین اینجوری دلن میخواستم ارت بابام باشه بگو بابایی واقعیم رفته سفر بگو چه نمیدنم کرده بگو نیست یه چیزی بگو دیگه فقط بگو من بابات نیستم چندی؟ تا چی نمیگی؟ ببین اگه این حرفاتو قشنگ بزنه همینهایی که گفتم و بگی منم میام تو مدرسه هر چی تو گفتی میگم باشه؟ آله آقا مهرداد اومدن باشه شما برو سلام سلام دارو چی گفتن کردی بچی اومد اینجا اومدم بیت ثابت کنم در ورده من اشتباه می‌کنم برو مهرداد ولی سدره فونی ای مزخرفاتی رو برای من ساختن تو باور میکنی؟ میگن یه یارویی گفت رو دیدی رفته سر کوسه تا تخم گذاشته بهش میگم وگه رو با هم تخم میذاره. میدونی چی میگه میگه از این دن هرچی بگی برمیاد؟ از تو درد نکنه یه دنبارده هم شدیم هرچی هرچیدعنت میاد بارمون میکنیم. پونه چته بابا تو این زندگی تو هر سازی زدی ما رقصیدیم. گفتی به کار زیاد هم میاد می بینین به زندگی نمیرسی گفتم باشه قبول. گفتی بیرون درگیری گیری عصبی میاد داد خونه میزنی گفتم بابا ببخشید قبول تو هرچی گفتی با گفت قبول ولی من توقونندام این تهمت به ما بزنیم. تهمت از تو هر کاری بگی بر میاد. برو. یه درگذشت او، یه درگذشت او چی پایین تبی صورت کنست، چی پایینیه؟ مامان یه درگاه میپایینم نمیخواد اگر یه تبی دنیم پایین؟ سلام سلام گل نستی دخترم. تو بودی زن زدی تلویزیون دلال شدی با چی حرف بزن دیگه یه آقا بابای من اسم بابایم علی اسمش شراس نامم چند سات پیش فوت کرده اون موقع بین بچه بیدن آخه عزیزم دخترم عزیزم تو دختری چه راضیاتش کردی؟ خب چیکار کنم؟ هر چی میگم که قبول نمی کنی. برای دوستام آوردم از زبون خودش بشنوی. چه اینا دوباره با بابا برادر میخواهم برم ننه و کسو کارشام بیارم. بس کن دیگه مرزا. تو بس کن. 2000 تا تهمت به من الان چه جوری میشه؟ تو چه شش من نگاه کنی؟ خیلی رو داری. گیرم اینی که میگی درست بقیهش چی؟ خودو مقیهش. یادت چه چش عرفای پوشه تلفن موازدی؟ چی گفتم؟ یادت چه بلاهای سر من آوردی؟ بابا بس کن بونه. یکی نفر میکنه چیکارت کردم. همش دنبال به اونه گرفتن همش دنبال گیر دادنی اون رضای خدا ول کن بس کن تمومش کن میخواب تمومش کن تو نمیذاری از اول زندگی با همه جارو نداره ساختم با همه و زیادت ساختم خوب جواب منو دادی مگه چیکار کردم چی گفتم هیچی گفتی بچه رو سر و به همین راحتی پونه این مسائل بیام حیات و بزرگش نکن من فقط گفتم الان وقتش نیست چرا وقتشه پونه وقت چیه من کله صبح میرم آقا سگ میام من وقت دارم تو وقت داری اصلا میخوام چیکار کنم بابا من خودم تو این دنیا قاچاقی همجوری زیادی زندم حالا یکی هم بکشونم به دنبال خودم بابا این بچه بیا مادر بیچارش بدبخ شده تا این قدی شده الانم یه سنگ انداخته تو چاک که تا آدم گنده نمیتونن درش بیارم بس کن مهدا تو درست نمیشی تو یه آدم مغرور و خودخواهی که فقط به خودت فکر میکنی یادگار بس کنه یادگار بس خونه. من تو خوب منو میشناسی میدونی من مغزم خرابه یهو یه چیزی میگم سره هرطام وام میسه اگه سرم بری رو همین سر. اگه فردا راس ساعت هشت صبح سر خونه زندگیت بودی که اگه من نمندم تو خیلی قلداری مرداد فقط قبالدیشو خوشونه بکشی منم بعد بخش خوشونه میکشم یا تو تو که زنگ که میگی خونمو گشام برای فروش خونم خونم میگم خونم مال توئه خیالت راحت خونه ازونی خودت نه خودت تو میخوام نه تو ببین شوخی نکردم راست ساته هشت سوف خونه زندگی نگیتی یا گولو. من باسمانن استیکو. داشتی بیچاره‌ام می‌کردی. ببینا بس. چوری نشد؟ نه. خدا به روحش رحم شاد خود نماد رقص می کردیم روی سبزهای رقص می کردیم روی سبزه ها. کوچه ها ها پر می کوچه ها بام ها پر می, شدن. کوچه ها بام ها پر می شدن. از دلایل خاک بیخا ما از ما. سلام من امروز اومدم خدمت شما شما رو ببینم من بچه همین خاکم همین جا بزرگ شدم. پشت همین نییمکت ها وا اونده تا نیم کرد من یاد دوران مدرسه خودم داخت که پر از لطف و صینیت خیلی اون ها رو دوست دارم خیلی خیلی فضه کلاستون رو دوست دارم. امروز اومدم هم شما رو ببینم هم یه دلیل خیلی بزرگ داره که اومدم خدمتون که حالا عرض میکنم. بچه ها هر کدوم از پدرهای شما یه شغل داره هر مردی برای که سرپست خانواده باشه برای که بتونه برای بچه ها شیزهایی که لازم دارن و بخره و زندگیشو اداره کنه باید یه شغلی داشته باشه منم به با عنوان پدر آینده کسی که ازدواج کرده و قرار پدر بشه خب یه شغل دارم شغلم بازیگریه یا بعضی همگرن هنر بشگی. فرق شغل من با شغل پدرهای شما شاید یه تفاوت خیلی کوچولو داشته باشه که شاید از نظر بعضی های تفاوت خیلی بزرگ به نظر برسه و اون اینه که شغل من فقط دیده میشه یعنی منو توی تلویزیون روی پرده سینما نشون میدن و مردم زیادی، اده بیشتری میبینن به منو میشناسن جامعه به همه شغلا نیاز داره مهم اینه که اون پدر با اون شغل برای خانوادهش، برای میهنش، برای ملتش زحمت بکشه. به شما همون پدر رو دوست داشته باشین به با شما رو دوست داشته باشه این خیلی مهمه من اومدم اینجا بگم که من پدر گلناز جان نیستم ولی اگه یه روزی بچه دار بشم و دختر باشه بچم با گلناز هیچ فرقی برام نمیکنه. یه اندازه دوستش دارم گلناز دختر من نیست ولی یه دوست بسیار بسیار خوبه بر من. و همیشه هم دوست خوب من باقی خواهد مود مثل شما ها من دیگه بیشتر مزامتون نمیشم برای گلناز جان و برای خودتون یه دسته خیلی خوشگل و مرتب بزنید بابا اگه گلاز رای نزاله بود کسا مرده بودم از نگرمی بونه دردی گردی کنه بابا که خیلی پرونی بابا ازخایی که کردم گفتم که ببخشی بهش بگونه ببخشنش خب چرا؟ بگونه می کنم بونه زشت جلو مردم دارم بگامون می کنم خیلی خوب عوض بخوام ببخشیم بله من قبول دارم من خیلی تو کارم غرف شده بودم اصلا حواسم به زندگی نبود من الان جنه گولناز گل بول بودم اول زندگی بعد کار باشه بله بکر کرمه فقط به خاطر بخوای تو اما باهاش حرف نمیزنم اینش بگو در عین بیلیاغتی پدر شده آره مبارکه آره پوله واقعا مره پدر میشه بله جدی پدر تو چرا علو نارو گفتم ولی دیدم تو چجوری راحت کردی یادت نرفته که <تصفح> من مخلصم تو اون بچه‌ونه واسه اونایی که من صدات چه نخوبه مثل گلاس خرم چی؟ خوبی بوده.